سلام میکنم خدمت همه آوازداده از ها با ما شکری شما ایشون چند قیمت؟ همه جمع جمع شده آفه. باورش بارا بازو بزرگم آدم قول نمیاد در تو بعد رو برداشته خوشگله اندرز هستن و غم نداره حاجی آقا میساز ازم پول پول داره کدی نه خبر بگو شام ماکیای پیرن تریش کالج رو خان تالیای یه جیدال پسر چه روی مایی داری همش میری برمیگردی گه کار مایی دایی تو بانک کاری داری وام مایی هاجی ما تو راست مفخره و آشنایی داری به مهندس هیچ کی مجوز نمی دل باش سواد نمیخواد میگه مایه میدم پسر به شواز دورم سكی ۲۰۰۰٢۰۰ میکشه ایزه ۱۰۰ تومن خالتم توره اس کل Act 22 اینکه اخصه داره اضافه کاری آقا زاده آقا زاده مام هنزایده ماهش رو بابا داده آقا زاده اضافه کاری آقا زاده بابا هماریده رو آره که فکر میکنه خبریه چون پاشکوچیه و شام سوشیه به یه پارتی پای گوشیه غز خالکو بیه و هنو پاش بومیده هنو عمل هست ولیه و خانده داشت زیر میزی گرفته حالا فام بالاست بالوش بالا ش ش ساخت بالاش آره میان دو به جای ریهرشون هر دفعه اومدن طرفم ریدمشون ما این بوده هر دفعه دینمشون چه دوری جمع شدن سر میز اینا کو رشت میکنم جبه میشه باورشون میخوام با همه بخوام ال خواهرشون پول خانوم بده بخواب با همه زود بعد عکس مکه بز بمرم زون توی اینستاگرام خدایی ترسینه نونیسون چون از رسیدن به دورانش 20 سالم نگذشته بگذریمون دیگه 20 تا اینا ایسکام چی دولا هنگو داشت که نیدم تره آره گفتم که یه بنویسم اگه ناره حتشیم که بکیم جلو زبونمو نمیشه بگیرن گیرن اه آقا زاده آقا زاده اضافه کاری آقا زاده آقا زاده, زاده،, زاده مامان زایده ما یه تخیرن پدر تو بود فازه از چی چی تو بود حاصل امروز که پدر تو بود قاتل ذلت و ذلات بهونهش وجود با طرف میشه شاه ناوبین علیت کارنامه دلی بلندتر ولی است مفخوری خوبه دیگه وقت نگی بسته رکول بقیه و نجی خسته آش، یا ملکاتو قورت کرده طولشم مفخوری ولادت کرده دخترم سگافت میدوشنش فازشه برقی افش بابر کرده صدام رفته نگی واقعا بس اینو ببینم کافیه حالم بچه ولی خست کارشون ببین با جمله ها چجون هنو گنده ها رو میکنم و گنده بارشون ببین دوباره در گیرن دوره هم آقا ساده ها دوباره جمع میشن دوباره